واعزان که این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روندان کار دیگر می کنند مشکری دارم ز دانشمند مجلس باز تو توب فرمایان چرا خود توب کمتر می کنند گویا باور نمی دارند روز داوری که همه قلب و دقل در کار داور می کنند یاربین و دولتان را بارخر خودشان نشان که همه ناز از غلام ترک و استر می کنند ای گدای خان قهبر جهد که در دیر مقان می دهند آوی که دلها را توانگر می کنند حسن بی پایان او چندان که عاشق می زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کنند بردر می خانه عشق ملک تسبیح گوی که اندران جا تینت آدم مخمر می کنند از عرش می خروشی عغل گفت قصیان گویی که شعر حافظ از بر می کند